با قصیده ای که در مده کافور اخشیری بود و تا بیت پونزدهون رو من خدمت شما بیان کردم تماشا به عیدن کلما وافت صفا نقش نبیهی صد در حال که داشت اسبانی رو میگفت که با اونها به طرف کافور شیدی رفتند تماشا به عیدن یعنی تتماشا که یکی از تاها افتاده به عیدن یعنی به عیدن و عرگلن با دست و پاهایی دستانشون گفته که جلوتره و حرکت تماشا به عیدن کل ما اون عیدی از صفا هر وقت اون دست ها میخورد بر روی تخت سنگ ها نقشن جا مینداخت نقش میکرد نقشن بهی صدر بزارد یعنی نقش نفیه در اون صفا در اون تخت سنگ ها نقش می انداخت سینه بازهای شکاری رو یعنی یک شکلی همچون سینه باز شکاری هوا یا این حال بود از نظر از اون فائل نقش نه که نوم برمیگشت به عیدی در حالی که اون پاهایی که نقش صدر و سینه باز شکاری بر روی تخت سنگ مینداخت حوافی بود جمع حافیه یعنی پاپوش هم نداشت چون اینها برای خاطر اینکه پای اسبانشون رو حفظ کنند اونها رو در یک چرمهایی قرار میدادند که اینها هم موقعی که بالا میرن صدا نده و همین که پای اونها محفوظ بمینه میگه اینها به این شکل بودن هیچ نعل و پاپوشی هم نداشتند پای لختشون انقدر محکم بود که وقتی این دستهای اونها بر تخت سنگ ها میخورد چنین نقشی رو به جا میذاشد نکته که توش بود این بود کلما وافت اون وافت فعل شرط کلما بود نقشنه جوابش بود وافت زمیر هیه برمیگشت به عیده نقشنه زمیر نون برمیگشت. چون عیدی جمع مکسره میشه هم مفرد محنس حسابش کنی زمیر هیه برگرده وافت هم میتونه زمیر جمع برگرده نقشنه یعنی میتونست در نه هم بگه نقشت ولی خب وزنش به هم میریخ نقشت بهی صدرالبوزاد ایچش کار نداشت حتی میتونست تو وافت بگه وافعی نر اونم جمع بگه ولی خب اونجا وزن با اون جور میآمد اینجا با این هر دو رو بیان کرد. تماشا را هم که گفتیم بوده تتماشا این جمله ما وافت صفت عیدنه این جمله شرطیه این جمله شرطیه صفت عیدنه درست شد یعنی حرکت میکردند با دستانی که هرگاه برخورد به تخت سنگ ها و صخره ها میکرد این که بهش تو فارسی میگن که یه حرکت میکردن با دستهایی که هرگاه برخورد میکرد با تخت نقش میانداخت بر روی اون تخت سنگها سینه بازهای شکاری را در حالی که این دستها پاپوش و پوششی هم نداشت خب بیت بعدی آخرین بیت رو گفتم دوباره تکرار کردم که بیت بعد رو به اون حد و تنظر و اون تماشا گفتیم بوده تتماشا فعل مزاره یکی از تاها حذف شده که بهتون گفتم باب تفعل تفاعل تفعل در مزاره معلومش جایزه که یکی از تاها رو حذف کنیم مثل تن از تو و حالا و تنظرهعد شده به جای تماشا پس معلوم اون ت تماشا بوده اینم هم و تنظ رو از فعل مز به دو رو منودن سواد کما دوجا این هیا هیا بوده اشباع کرده شده هیا سرست شد خب تا نکته اول بگم که اینها رو به داشته باشیم یکی سوادقه سوادق جنه صادق است غیر منصرفه لذا سودن مجرور سوادقه که صفته منصوب شده چرا؟ چون این در غیر منصرف جرلش به فتح است در غیر منصرف جرلش به فتح است مثل اینکه شما میگید مرر به احمده مرر تو به زی نده غیر منصرف نصبش یعنی جرش به فتحه فدو جا جار و مجرور متعلق به تنظرست دوجا جمع دوجی است دوجیه یعنی ظلمت تاریکی فدو میشه می فد در تاریکی ها آه فدو یعنی در تاریکی ها سود جمع سودا سود جمع سودا مثل حمر جمع همراه اینجا سود صفتی که به جای موصوفش نشسته یعنی بوده من اویونن سودن سوادق چشمهای سیاه از چشم سیاه گرفتید؟ از سیاه صادق منظور یعنی از چشمان سیاه صادق درست شد پس اون سود صفت اویون است. سوادق هم صفت دوم اون اویون بوده حالا چون اویون نیست ما میگیم سوادق صفت سود درست شد ولی هر دوتا صفت چشم های سیاه صادق در نگاه یعنی که خوب میبینند یعنی سوادق یعنی صادقه هستند در دیدن میتونن ریز و دور و کاملا دقیق ببینند این مطلب دو جانم که گفتیم در ظلمت‌ها و تاریکیها یرینه یرینه صفت بعدی است نون فاعلش بعیدات مفعولشه و ایداد مفعول شد کماهیه این کف به معنای مثل ما هم به معنای علتی است یعنی مثل علتی هیه مبتدا خبرش یه هیه دیگه بوده که خب حذف شده یعنی کماهیه هیه یعنی مثل التی هیه هیه این کما این جار و مجرور حال است از برای بعیدات حال است از برای بعیدات حال است از برای بعیدات میشه چی مثل التی هیه هیه یعنی مثل آنچه که او او بوده یعنی عین واقعیت رو مثل همونی که بوده آه. ما میگیم کما هوه هو یعنی مثل اون چیزی که او اوست یعنی دقیقا همونی که بوده خب حالا ببینید ما یه دونه رعی داریم یعنی دیدم یه یعنی نظر تو داریم؟ یعنی نگریستم. خوب نگاه کردم. نظر غیر از رؤیت. رؤیت یعنی دیدن، نظر یعنی به نگریستن. لذا تو قرآن میگه فلین زرل انسانو الی تاامه. یعنی باید انسان خوب نگاه کنه به فضایی که مادی معنوی داره مصرف میکنه فلینذر انسانو الا تعامل خب و تنظر رو فائلش میخوره به اون اسبان که تتماشا هم همینجور من سودن یعنی من اویونم سودن سوادق یعنی خوب که خوب رو رو همونطور که هست دوجا جا جمع دو بود یعنی ظلمت شب خب تا اینجا چی میشه؟ این اسبان و این جرند این اسبان چیزهای دور رو همونطور که هستند به خاطر اینکه خوب میبینند با اون چشمه سیاه صادق خودشون در ظلمت شب چون اسب رو معمولا به تیزبینی توصیف میکنن اسبی که تیزبین باشه بتونه خوب خطر رو احساس کنه کجا عقب بشینه کجا کرد داشته باشه کجا فر داشته باشه آه؟ این جزء خصوصیات خوب اسبه که اسب خوب رو توصیف میکنن به تیزبینی حتی توی ضرب المثلشون میگن ابسر من فرس یعنی این چیز بینتر از اسب عقاب رو میگن اسب اون این خیل خب نگاه کنید حالا دیگه تقریبا همه و تنظر و میبینند یعنی میلگرند این اسبان از یعنی به واسطه چشمانی سیاه و صادق در دیدن در تاریکی ها میبینند در تاریکی ها به واسطه چشمانی سیاه و بگید صادق در دیدن چشمانی که میبینند یرای نه صفت بعدی اون سود چشمانی که میبینند بعیدات شخوص شخوص جمع شخصه میبینند بعیدات شخوص یعنی از شخوص البعیدات اضافه شده صفت به موصوف مثل واضح المسالک یعنی المسالک الواضح میبینند شخوص اشیا شخصهای اشخاص دور رو کماهیه در حالی که همونطور که هستند یعنی اگر من و شما نگاه کنیم یه چیزی دور باشه اونو ریز میبینیم هرچی میره دورتر ریز میشه تارتر میشه اما اینها میگه اشخاصی که دور هستند اونها رو میبینند در حالی که اونها همونطور که هستند یعنی انگار جلوی چشم و تنظر و منصودند و مینگرند از چشمانی که یعنی با چشمانی که سیاه و صادق در نگریستن است در تاریکی ها می در تاریکی ها وقتی میگه تو تاریکی اینطوری می بینند خب دیگه تو روشنایی بگید معلومه که چیه مبالغه است میگه تو تاریکی با اون چشمان سیاهشون که همه چی رو دقیق می بینه می بینند چشمانی که می بینند اشیاء دور را اشخاص دور رو در حالی که همونطوری که بودند هستند درست شد نه یه ذره انگار تار نه یه ذره انگار کچک در همونطور که هست. یعنی اصبان درجه یک خب این را فهمید. نمیکنم بعد از این همه توضیح چیزی براتون باقی مونده باشه هم ترکیب بیت رو گفتم هم لغاتشو رو گفتم هم مواردش رو بیان کردم که شما بتونید بفهمید بریم سر بیت بعدی و تن سبو و تن سبو. لجرس الخفي سوامع یا خل مناجات ضميره تنا دیا شو. و تنسبو لجرس لخفیه خفی صفت جرس لجرس هم متعلق به تنسبو مثل اون منصود به که متعلق به تنسبو سوامعا مفعول تنسبوست یخل صفت سماو سوانه جمله بعد از نکره صفت یخل مناجات از زمیر مفعول اول یخل تنادیا مفعول دوم درست شد جرس صدا رو میگن صدای خفی رو هم میگن خب اینجا چون خودش خفی را آورده پس بگیم جرس یعنی صدا درست یعنی صدا چون خودش خفی را آورده الان به صدای خفیه تنادی مستر باب مفاعله است ناد تنادا یتناده تنادیان تناد دوی بوده به خاطر اینکه یا لام الفیله میشه تنادی مثل اون تماشا بود که تو بیت تبلی پونزدهم بود تماشا یا تماشا تماشیان مثل تغازا یا تغازا تغازیان درست شد؟ تنادی پس مستر باب بگید تفاوله یعنی همدیگر رو صدا کردم توی بیت قبل که من امروز اول برای شما خوندم دست و پای اونها رو تو سرعت دست و پای عصبها رو گفت تماشا به عید. یعنی تتماشا تو بیت بعد چشمان اون عصبها گفت که بینند تو تاریکی اشیا رو میبینند اونم اشیا دور رو همونطور که انگار جلو شد. خطا نداره. چشمان سیاه و صادق در مولند تو اینجا خوشاشون رو داره خب نیازه به این وسائل رو داره که کمک بکنه اون کسی رو که سوارش درست میگه تنسبو تنسبو یعنی تیز میکنه قرار میده سوام اند گوش هاشون رو تیز میکنن لجرسل خفی به خاطر کوچکترین صدای پنهان کوچکترین صدای پنهانی از دشمن بلند بشه از هر کجایی که باشه اینا با گوششون اشتر عکس عمل نشون میدن و تنسب و سوام ان یعنی آزان ان گوش رو گوش های شنوایی رو لجرس الخطی بعد این گوش ها رو میگه که چطوریه میگه گوشهایی که یخلن خیال میکنن خاله یخالو از افعال قلوبه گوشهایی که یخل نه مناجات از زمیر مناجات یعنی با همدیگه یواش در گوشی صحبت کردن نجوا از همین دیگه مناجات از زمیر زمیر یعنی دل درون میگه یه کسی تو دل خودش هم مناجات بکنه صحبت خفی بکنه یخل نه تنادی اینها گمان میکنن اون مناجات داخل دل دشمنان و دیگران را بگید یعنی مناجات زمیر خدا مناجات دل اون حرفی که تو دل دشمنانم هست اینا رو فریاد هم دیگه صدا یعنی دو نفر اگر تو دلشون هم با هم صحبت کنن از دشمنان گوش های اینها خیال میکنن اونا دارن داد میزنن و هم دیگر رو صدا میکنن یخل نه نونش میخوره به بگید سوامه نونش میخوره به سوامه درست شد و یعنی آزانن سوامهن جمع سامه است یخل نه هم که گفتیم یعنی یحسب نه گمان میکنن مناجات هم که گفتیم که آرام با همدیگه چیزی رو نجما کردن تنادی هم که گفتیم که یعنی بلند بلند با همدیگه حرف زدن متضاد مناجاته تنادی. تنادا القومو یعنی همدیگر رو داد کردن و داد صدا کردن. ناجا القومو یعنی همدیگر رو یواش پچپچی پیش صدا کردن با هم صنعت تباق دارن خوب دیگه اگه کسی با دل خودش هم مناجات کنه اینها صدای او رو مثل فریادی که کسی اون یکی رو با قول خودمون صدا میکنه میشنوند خیال میکنن داد زد خب و تنسبو و قرار میدهند به اینجا باید بگیم تیز میکنن دیگه نست کردن اینجا باید. و تیز میکنند برای صدای خیلی پنهان یه هم همه کچک شنوایشان را یعنی آسانن سما گوشهایی که گمان میکنند پچ پچ کردن شخص در درون خودش رو پچپچ پچ کردن ها در درون خودشون رو دومن پش کردن دشمنان در درون خودشون گمان میکنن این نجوه درونی دشمنان را فریادهایی که اونها با هم بیزن گمان میکنند این مناجات درونی دشمنان درست شد؟ این گمان میکنند این مناجات درونی اونها مناجات ذمیر اونها فریاد کردن اونها نسبت به همه یعنی اینقدر گوششون تیزه که خفی ترین صدا رو بلندترین صدا احساس میکنن یخالا گمان دو سه بار ترجمه کرد خب اینم مالی فقط اگر از نظر چی بدانید میدونید مثلا گفتیم تنس بلغل جلل خفیه سوام اند گفتیم یعنی چی؟ یعنی آزانن سوامن گوش های شنبا مثل اون سود بود که گفتیم من اویونن سودن اینجا هم آزانن سوامن بوده دیگه گوش های شنبا. اونجا چشمان سیاه یکی از خواسرمی اینه که موسوف میافته صفت جاش میشینه و اون موسوف تو معنا هست اما تو لفظ ذکر نشده که اینو بهش میگن ایجاز یعنی کلام یه مقداری کتاوتر شد نه مناجات از زمیر میشه مفعول اول تنادین میشه مفعول دفع خب اینم فهمیدیم. بیت بعد با جازب و فرسان سباه چه انه علل اعناق منها افاییان تو جازب باز همون از پا فرسان است <الصباح> میشه مفعول اول اعنتن میشه مفعول دفع که انه گروف بالفعل بلفیده علل خبر مقدم یعنی علا اعناقه هم علا اعناقه ها جنون هست با افائیه افائیه جمع افعا که ما تو فارسی اماله میکنیم میگیم افعی درست شد مثل که ما لیلا رو میگیم چی؟ لیلی افعا عربی ما ماره مارفی عفایی میشه جمعش این افعایی ای اسم که یعنی که انه, انه افعایی الان اعناقه ها علاله اعناق منها منها یعنی اون اصفا برگردنها از این اصفا برگردنها از این اصفا این لغتش داشته باشید جمع انان این جمع انان مثل مثال که جمعش میشه امسله درست شد. اینان هم جمع شده چی انه یعنی انانها. ها انان چیه افسار اون بند چرمی که اسب رو باهاش فرمان میدن انان که میشه افسار درستو اینجا تشبیه کرده افسارهای اونها رو که از جنس چرم بوده و از دو طرف صورت عصق میاد تو دست این کسی که سواره این انانها رو تشبیه کرده به مارهای افیل که من خواستم این رو بدونید قبل از ترجمه بود بیان لغات که بتونید بفر کجا منظور از فرسان از سباه. فرسان جمع فارسه فارس یعنی سوار سوارکار کار درست درست از یعنی صبح. چون کسانی که جنگ میرفتند و سوار بر اسب بودند و میتاختند اینها صبحگاهان حمله می کردند و دشمن رو غافلگیر می کردند و شبیخون میزدند گفته فرسان از سباه سواران صبحگاهی منظور یعنی سواران یورشبر در بگید صبح سواران شبیخون زن درست کنیم آه. یعنی فرسان القاره قاره یعنی هجوم آه، یعنی فرسان القاره به صباح یعنی اونهایی که سواران یورش هستند شبیخون هستند در صبحگاهان این فرسان صباحین اعنتا مفعول دومه فرسان صبح مبعول چرا صبحگاهان حمله میکردن؟ خب چون دشمن اون زمان در خواب شیرین بوده از اسلحه و جنگ افزار خودش غافل بوده یا در بزم بوده و در شب خودش اینها می توانستن شبیخون بزنند و اونها رو قافل گیر کنند و از با جمع میگه که این اسبان چون قوه و نشات دارند درست میکشند. از دست سواران مبارز و شبیخون زن خودشون انانهاشونه دیدید اسب اینقدر وقتی با نشاط بالا و پایین حرکت میکنه جوری که میخواد افسار رو از دست سوارکار بگیره تو رو میکشند جذب میکنند از دست سواران خودشون اینان نه اینکه رم بکنن این که انگار ممی... نمیخواد ولی بله اگه عصب عادی باشه این حال نداره که کلشم تکون بده که اون افسار اینا بخواهند افسار پاره کنند که اوقات میگن میگن فلانی بخواهد افسار پاره کنه یعنی انقدر با قول خودمون شور و نشات پیدا کرده تجازه با فرسان از سباهه این نداره به خاطر قوه و نشاطشون میکشند اینانهاشون رو از دست سواران خودشون بعد گفته این کعن علالعناق منها افایی این منها برمیگرده به اون ائنه این جمله کعن علالعناق منها افایی صفت ائنه است جمله بعد از انانهایی که برگردن اینها گویا افعی هایی است که برگردن اینها هست تشریح کرده اون انانها رو که از جنس چرم درجه یکه که انگار نشتهای افعی به گردن اینها است این هم که تشبیه کرده به افعی خودش خیلی ها یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیتونند این انانها رو به گردنشون تحمل کنند. ها انگار عصب وحشی دیدید خب این عصب وحشی اگر افسار به گردنش بندازه اما افسار براش خیلی سخته انگار ما رو افعی به گردن او افتاده نمیتونه این رو بگو تحمل کنه قادر به تحمل او بگید نیست تشویه کرده نه رو به مارهای افعی به خاطر طولشون و امتدادشون و اینکه آزار دهنده هستند برای اونها به این تشویه کرده این تجاذبه هم بوده و تجاذبه ها چون اطفس به جای همون چیزا ولی چون وزن شعر جور در نمیامده واب رو حذف کرده گاهی اوقات حرف عطف بگید حذف میشه به غرینه اینجا بوده هم پس این تماشا، تتماشا و تنظرو و تنسبا و تجازبا اینا خصوصیات اون عصف است که این گفتش که و جردن تو بیت چاردهم که گفتیم جرد اسب کوتاه موی سوق موی این اسپا این کارها رو میکنه. درست شو که ان علل منها افایه. نگاه کنید گوش اگر این منها هاش بخوره به اعله یعنی از طرف این انانها ها گویا بر اعناق اونها ارغی اگر بخوره به اعنه این جمله میشه صفت اعنه میشه انانها ای که برگردن این اسپا از طرف این اعنه افئی هایی میباشد ولی اگر منه برگرده به اون اسپا یعنی فائل تجازبه برگرده به اون یعنی از طرف اصفا از جانب اصفا گویا برگردن اونها افعی افتاده نسبت به اون اصفا گویا برگردنشون افعی است. اون موقع این جمله میشه حال این جمله میشه حال برای فاعل بگید اون تو جاذبه. که به نظر میاد حالیتش بهتره که بخوره به اون به این یعنی میگه که اینها میکشند از دست از سواران من سواران شبیخون خونزن میکشن از دست اونها اینانها رو در حالی که انگار برگردن اونها افعی هاییست او یا انگار برگردن اونها یا در حالی که انگار گردنشون افعی افتاده و قابل تعمل نیست حالا ما منها رو زدیم به اعنه و گفتیم صفت بعضی ها منها رو زدن به فائلت و, و یعنی اون هست که شده دلست شد که کدومش حالا بهتره به نظر میاد که صفت باشه بهتره که منها بخوره به اعنه و بشه صفت ما این رو دیدیم و از نظر معنا و مفهوم هم بهتره که ان علل عناقبن انانهایی که برگردن اونها از طرف این انانها گویا اخیهای افتاده است چون مار نسبت به اخی خیلی حساسه یعنی چیز نسبت به اخی و مار خیلی حساسه درست شد میگه انگار که اون افتاده گردنش حالا اگر یه موقعی مار بیفته رو گردنش اونم هم افعی چه میکنه این است اصلا میگه اینها تو میدان جنگ اینطوری هست میخوان افسار پاره کنن این افسار رو نمیتونن تحمل کنن گویا که این افسار به گردن اونها افعی هاییست دیگه چون خیلی توضیح دادم خودم همه یه مقداری احساس کردم که زیاد رویه درم و پس منها بخوره به اینه و بشه جمله صفت بعد از اینه بریم بیت بعدی به عزم و ازمن یسیرال جسم و به سرج بهی و یسیرال قلب و به جسمه ماشین, ماشین اینم بوده ماشین بهی دیگه چون درونی راکبن بهی اینم بوده ماشیان بهی یه بهی داره که اون بهی توضیح دادم خدمتون که گفتم حال گفتن صفت گفتن دو سه بار هم عرض کردم که اگر بزنیمش به اینه صفت بودنش بهتره من همیشه توی معلمی این رو بدونیم اصلا نیاز به سوالم نداره یعنی جای اگر دو تا قول سه تا قول نقل کردم اصلا عادت برینه اینه که همیشه قول اول بهتر از قول دومه قول دوم بهتر از قول سومه درست شد پس بنابراین صفت بودن بهتره و منها بخوره به و یسیر رو قلب و فل جسمه ماشین یعنی ماشین بهی اون بهی چی شده؟ بگید به, به قرینه بهی قبل بگو حضف شده ماشین بهی به ازمن جار و مجروره خب این به قرینه یه فعلی میخواد که بهش متعلق بشه درست اینکه گفت ما با این ازفا اومدیم و اومدیم و که اینطوریه حالا میگه به ازمن یعنی نصیر رو یا سرنا آه؟ حرکت کردیم به ازمن با یک اراده حالا سواران رو میگه دیگه سرنا به ازمن یا نصیرو به ازمن گفت ما اصفایی داشتیم کیز خودش میامده یه دیرم داشته که خوبوناه خدم و هشمش بودن بعد افرادی بودن که به او وابسته بودن همه با این اصفایی که توصیف کرد که چشمشون چطوره گوششون چطوره و اصلا انان پاره میکنن افسار پاره میکنن میگه ما حرکت کردیم با اینها به سوی کافور تو مرفه کافر رو مخاطب بکنه دیگه میگه ما از حلب کوبیدیم با یه چنین اصفایی اومدیم به سوی کافور سرنا به عزمه یا نصیر رو به عزم حرکت میکردیم حالا سرنا یعنی حرکت کردیم نصیر رو بگیریم یعنی ماضی استمراری یعنی حرکت میکردیم از طلب تا قاهره تا فستات که جای کافور بود با عزمی با اراده یسیر جسم و سرجه را که بندهی. این یسیر و الجسم و راکبا بهی صفت از عزم. با عزمی با این صفت و یسیر القلب قلب و فل ماشین اونم بهی یعنی به عزم اون بهی میخوره به عزم چون جمله که صفت واقع میشه نیاز به رابط داره دیگه این بهی دوم، فسر شده به قرینه اول و این متداوله که گاهی او از جمله دوم به قرینه جمله اول تفسیر میشه. مثل اینکه میگه خدا یمهو الله ما یشاء یمهو الله ما یشاء و یثبت یعنی محو میکنه خدا هر که بخواهد و یثبت و اثبات میکنه یعنی چی؟ هرچی را که بخواهد بوده ویس به مایشا یمهو الله مایشاو و به تو یعنی و به تو مایشا این هست بهش میگن ایجاز در حذف درست شد پس از نظر ترکیبی فهمیدیم که سرنا به عزمن یا رو به عزمن یسیر الجسمو فی سرجه راکبن بهی و یسیر القلب فی الجسم ماشین بهی میخواد بگه که ما با یه عظمی اومدیم که جان و روح ما رو حرکت میداد اینو میخواد آنوان بکنه یعنی با دلو اومدیم سراغ آقای کافوره اخشیدی در فستاد پس به ازمن متعلق به یه محضوف یعنی سرنا یا نصیر که من توضیح دادم درست شد و بهی هم گفتیم میخوره به عزم حرکت کردیم با عظمی این نکر آورده نکره دلالت بر تعظیم میکنه یعنی حرکت کردیم حرکت میکردیم میآمدیم با یک عزم قوی یک اراده قدیم. با یک عزم و اراده قوی حرکت کردیم از حلب به سوی فستاد برای رسیدن به کافر عزمی که جسم ما در حالی که بر روی زین از بود سبقت میگره از اون زین و قلب ما که در درون جسم ما و سینه ما بود سبقت می گرفت از جسممون به خاطر عزم و اراده‌ای که ما در آمدن داشتیم واسه مفهوم رو بفهمید بعد روی عبارت پس ما حرکت کردیم با ازم و ارادهی قوی ازم و اراده قویی که اون جمله صفحه. که جسم ما در حالی که بر روی زین اسب بود سبقت میگرفت از زین اسب و زینش ما رو می آورد اما جسممون به خاطر اراده چون بر اراده سوار شده بود از اون میزد جلو مبالغ است و قلب ما که در سینه ما بود در جسم ما و در سینه ما بود سبقت می گرفت از جسم ما قلب تو سینه است سینه جسم ماست ما داریم قلب رو ولی قلبمون انقدر عاشق بود می از ما جلوتر بره برسه به آقای بگید کافور اخشید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از و اراده ما در رسیدن به کافور خیلی زیاد. فهمید چی میگه؟ میگه جسم ما سوار این اسبای تو اندرو بود. ما رو می‌خواست بیاره پیش کافور. ولی ما یه اراده‌ای رو سوار شده بودیم. اون اراده ها از این اسپا بگید تیزتر بود. اون اراده جسم ما رو از این زین اسب جلوتر می آورد به طرف کافور. و جسم ما آه، اون اراده جسم ما که توش قلب بود قلب ما رو زودتر از جسممون میخواست برسونه به کافر پس اراده جسم ما رو از زین اس با زودتر میخواست برسونه و اون اراده قلب ما رو میخواست از جسممون هم زودتر برسونه به پاپونیش پس پا گفت حرکت کردیم با یک عزم و اراده قوی به سوی کافور اخشیدیم با چی حرکت که با از اما این اراده قوی جسم ما رو از زین عزقا زودتر میخواد پس بیاره برسونه به کافور و این اراده قلب ما رو میخواست از جسممونم زودتر بیاره برسونه به کافور حالا بریم توی عباره فهمیدیدش پشنگ گفت به عزم یسیر الجسم حرکت میکرد جسم یعنی جسم ما فسرج در اون زین زین از در حالی که روی زین از بود راکبند در حالی که راکب بود بهی به واسطه اون عزم چیزی اراده یسیر و جسمو در حالی که راکب بود بهی به سبب این عزم درست شد به سرج. جسممون در سرج در زین حرکت میکرد یعنی از زین میزد جلو در حالی که راکب بود به اون عزم و یسیرال قلب و فیل جسم و حرکت میکرد قلب ما در جسممون یعنی قلبمون مخواست از جسممون بزنه جلو ما بهی در حالی که حرکت میکرد آه با این عزم قلب ما حرکت میکرد با این عزم ولی بگو مخواست از جسم بزنه جلو جسم ما راکب بود به واسطه این اظم ولی داشت مخواست از سرج زین بزنه مخواست از زین بزنه جدا مبالغه کرده خب یعنی ما با اصفا می آمدیم اصفا تو اون رو ولی جسممون او یا سوار اراده شده بود مخواست از این اصفا بزن جلو تا زودتر برسه به کافور و قلب ما اینقدر عاشق کافور بود قلب ما تو دلمون بود توی قلب ما توی جسم ما بود اما از جسممون ما مخواست جلوتر با جسم ما حرکت میکرد. میخواست از جسم ما بزنه جلوتر تا زودتر برسه به کافور. خوب بود نه؟ خب. سرج الجسمو فسرجه. متعلق به یسیر است. راکبن حال از برای جسمو. نهی میخوره به راکبن. البته بخوره به جسم چیز رو بهتره یعنی حرکت میکرد به واسطه اون حزم خیلی بهتره تا بخوره به راکبه راکب بود به اون عزم یا حرکت میکرد جسم ما در زرچ در حالی که سواربرین عزقا بود حرکت میکرد در روی زین به واسطه عزم یعنی حرکت کردنش روی زین و جلو زدنش از زین به واسطه عزم و اراده متعلقه به یسیر یعنی حرکت میکرد جسم ما به سبب ازم و اراده ما بر روی زین اسب در حالی که سوار و رو بود و حرکت میکرد قلب ما در جسممون در حالی که راه میرفت یعنی قلب ما داشتش جسممون راه میرفت خب اما ماشین بهی حرکت میکرد به سبب این این ماشین حال است از قلب ما حرکت میکرد در جسممون به سبب این عزم قلبمون حرکت میکرد در جسممون به سبب عزم و جسممون حرکت میکرد بر روی زین به سبب این عزم در حالی که بگو راکب بود قلبمون در حالی که ماشی بود ماشی یعنی حرکت میکرد راکب یعنی ثواب خب پس یسیرا و اون یسیرا که به همه شده این دوتا جمده صفت هستن برای عزم بهی هم میخوره به عزم الجسم و فائل یسیر سرجه متعلقه به یسیر است راکبن حال است از برای الجسم اون یکم این همینه فقط به هیچ ازش که متوجه شدید و کامل مبحث رو بود. بریم سر بیت بعد قواه سده توارک که غیری و من قصد البحر استبل مسوام بیا جمع قاصده است یعنی قصد کننده مثل سوادق که جمع صادقه بود قواسه جمع قاصد است یعنی قصد کننده ثوارک جمع تارک است یعنی ترک کننده فروگذارندهرس شو کافورم که کافور اقشیدیه این مصری دومش و من قصد بهره استقل سواقیه سواقی جمع ساقیه است ساقیه یعنی نهر کوچیک جوی آب بهر یعنی دریا استقل یعنی عدهو قلیلا عدهو قلیلا مثلا میگیم استقل زید امرن یعنی زید عمر رو کوچیک شمرد درس استقل یعنی کوچیک شمرد مثل استحسن یعنی زیبا شمرد استقبه یعنی قبیه شمرد قبیه دانست استقله یعنی قلیل دانست قلیل شما سواقی هم جمع ساقیه یعنی جوی کچه این مصره دوم زرب المسل شده و به عنوان زرب المسل هم استفاده میکنم اینه. من قصد البحر هر کسی که قصد دریا کند آن کس که به سوی دریا میرود استقل از دیگه نهرها و جویهای های کوچک رو چیزی حساب نمیکنه اونها رو قلیل می باشه؟ میگه چون که صد آمد نود هم پیش مساه این نود گفته اینجا سواقی میشن یک و دو میگه کسی که صد رو داره و قصد گرفتن صد کرده صد در صد رو میستقل از سواقی دیگه اون جویهای های و حساب مثل کسی که مثلا قراره بهش صد میلیون بده این میگه یه هزار تومنی، دو هزار تومنی، پنزار تومنی و دیگه زیاد حساب براش باز نمیکنه، میره طرف اون، حتی دلام نمیشه برشت حالا اینو واسه چی گفت؟ اینه داد. در گفت ما جسممون زودتر از احصف ها میخواست برسه به کافور و قلبمون هم زودتر از جسممون میخواست برسه به کافور در کافوره همه اینها قصد داشتن برسن به کافور قواست در کافوره که غیرهی غیر کافور اصلا حساب نمی کنایه به سیف و دوله و اصلا سیف و دوله و تو مسیر اگر مثلا خانزادهی بود و یه کتخدایی بود و غیر اصلا آدم حساب نکردیم مثل برق از حلب اومدیم به طرف فستاد قصد کافور کرده بودیم این یعنی اصفا قصد کافور کرده بودن و بگید و هرچی که غیر کافور بود رو فراموش کردیم مثلا آدم حساب نکرد دوست. چرا؟ چرا اینها کافو رو فقط قصدشو کرده بودم و دیگران رو نه ها این استر دوم استیناف بیانه زیرا کسی که داره طرف دریا میره دیگه یه جوی نهر و یه آب کچونی که از این وران برکه ای چیزی باشه که حساب نمیکنه کنه به دریا برسه اونی که بخواد به دریا پیوندت از نهر و کوچک بگید مستقنی از اونا رو کوچک حساب کنید درست شد پس قواسد کافور توارک غیرهی قواسد حال است درست حالا میدیم از هم که گفتیم جن ساقی است یعنی دهر کچیک درست یادتون باشه توی چند بیت قبل داشتیم جردن و جردن مدد مددنا بین آزان حلقنا فبتن خفافن بیت چارده و جردن گفت این اصفارو میخوایم ببریم برا کافو مددنا بین آزان حلقنا که ما بین دوتا گوش اونها نیزه هامون رو نشانه رفته ایم فبتن خفافن یتبعنل اوالی ها که تیزن دنبال میکنن اون تیری رو که ای رو که ما پاید کنیم این و جردن این و جردن بعد گفتش که چی؟ تماشا تماشاش و صفت جردن و تنظر و عطفه به جای اون و تنظر و عطفه و تجازه و عطفه که بابش افتاده به ازمن درست شد گفتیم بوده نصیر و به ازمن یا سرنا به ازمن این قواصده بعضی گفتن صفت همون جردنه درست صفت اون جردن یعنی اسبان مکوتا جردن قواسده کافور این از این. بعضی میگن نه این به ازمن مگه متعلق به یه سرنا و نصیر رو نبود با قرینه ما فهمیدیم یعنی نصیر رو به ازمن یا سرنا به ازمن اینم اینطوری بوده قواسده یعنی اینجوری بوده قصد نا رکب ها سوار شدیم زکیبنا خیولاً قواس دکاپورن درست توارک غیرهی هیات بجور یعنی ما سوار شدیم بر اسبانی درست شد که اونها چه کردند بگید یعنی اینطوری بگو بگو سرنا به خیول قواس در با اسبانی که اینها قواس کافورن دست کافور داشتن و که غیرهی و اصلا به دیگری هرکی بود نگاه نمیکردن آف یعنی سرنا بالخیول اینم تعبیر اینطوری ببینیم سرنا بالخیول یعنی چی حرکت کردیم با اون اسبا سرنا بالجرد تو اون کلمه جرد قبلا ما گفته باشیم سرنا بالجرد قواصد این قواصد خالص از زمان الجرد رست شد پس یومله چی شد؟ بگید به جای که بگیم این صفت است برای یه جردی که هفش به قبله اینم مثل اون به عزمه تقدیر داره اینطوری بوده چی بوده؟ بگید سرنا سرنا یعنی چی؟ حرکت کردی خیول، خیول یعنی اسفان یا بگو بلجرد دیگه قشنگ بفهمیم سرنا بلجرد قواس حرکت کردیم یعنی از حلب به فستاد. به واسطه چی با چی حرکت کردیم بلجرد با اسبان تیزپا این اسبان تیزپا چه حالی داشتند؟ قواس در کافوره قصد کرده بودن کافور رو و توارک که غیرهی و پشت سر گذاشته بودن رو رها کرده بودن غیر کافور و غیر کافور هر کی بود آدم حساب نکرده من جمله صیفداد چرا مثل دوم جواب میده زیرا هر کسی که به سوی دریا رود دیگه بگو جوی های کوچک رو چیزی حساب پس اون به ازمن قبلش یه سرنا نصیرو تقدیر گرفتیم این قواصده هم همینطور سرنا یا نصیرو بلجرد بلجرد بگیم که بفهمیم اون جردن قبل جردن مددنا رو داره بیان اوه این هم مال این قشنگ شد اون جمله من استغل من قصد البحر استغل سواقیان که گفتیم این چیه بگید استیناف بیانییه یعنی زیرا هر کسی که به سوی دریا رود دیگه نهرهای کوچیت رو حساب نمی‌کنیم یعنی ما از اون طلب با این جرد اسبان تیزمون تاختیم بدون درنگ بدون معتلی بدون اینکه جایی وایسیم یه راست اومدیم رسیدیم به فستاد هیچ کسی رو غیر از کافور قصد نکردیم فقط کافور و بقیه رو شدیم. نگاهم نکرد. این یعنی شدت عشق و که گفت که قلبمون میخواست بهش برسه، جلوتر از جسممون، جسممون میخواست بهش برسه، زودتر از اسبانمون. اینجا میگه ما با این اسب‌ها اومدیم در حالی که فقط قصدمون کافور بود و هیچ کسی رو نگاه نکردیم. مثل اینکه یکی میگه آقا من بدون معطلی خدمت رسیدم، بدون اینکه اصلا به جایی توجه کنم، چیزی تاختم اومدم. یعنی نهایت شوق و علاقه برای رسیدن بعد میگن چرا میگه چون ما اگر بیایم پیش کافور عین اینه, اینه که به دریا رسیده باشیم کسی که میخواد بیاد سراغ دریا دریا رو قصد کرده دیگه پای یک جوبویه نهر آب ک محطل نمیشه من قصد البهر استغل سوا خوب بجا ات بنا انسان عین زمانه و خلت بیازن خلفها و معا بیا معاقی اطراف چشم گوشه چشم ما دو تا گوشه چشم داریم دیگه یکی طرف گوشه یکی طرف بینی اونی که طرف بینیه بهش میگن معاقی گوشه چشم های طرف بینی اونی که طرف گوشه بهش میگن لحاظ میگن فلانی لحاظ میکنه یعنی گوشه چشم نباید پس معاقی داشت شد گوشه چشم طرف بینی، الهاز لحاظ گوش چشم طرف اون بره. طرف گوش این لغت رو گفتم که بدونید ببینید انسان کلمهاش لفظ مشترکه انسان درست شد لفظ مشترک یکی انسان یعنی آدم منو شما انسان یه انسان هم داریم انسان اون انسان یعنی مردمک چشم این سیاهی چشم مردمه که چشم مم. چشم سفیدی داره و سیاهی دیگه مم. گردی رو میگن چی؟ انسان پس انسان لفظ مشترک شد انسان چی شد؟ بگید لفظ مشترک یکی یعنی آدم، انسان درست رو یا ایه انسان یکی هم انسان یعنی مردمه که چشم الان این شعر رو نگاه کنید میخونم یاد آمون میگه جهان انسان تو میفهمیدین شروع یا نه؟ میگه جهان انسان پیامبر یعنی پیامبر پیامبر عین انسان عین انسان جهان انسان پیانبر این انسان علی انسان این این جهان است علی انسان عین این جهان است شعر من یادم افتاد انسان رو کلمش اینجا دیدن می قول خودمو پیچ فلسفی گفته میگه علی جهان انسان بیه. این تشبیه بلیغه جهان انسان یعنی چی؟ یعنی دنیا مثل یه انسان میگه جهان انسان پیامبر این انسان برد این انسان حالا این این انسان تو بدید پیامبر این انسان علی انسان این این جهان است پیانبر این انسان یعنی چی؟ جهان انسان پیانبر این انسان یعنی پیانبر چشم این جهانه جهان مثل یک پیکر کرد مثل یه انسان پیامبر چشمشه بایی پیامبر نباشه این جهان کوره راه به جایی نمیبره چشم این جهان کیه؟ بگید پیامبر. اما پیامبر درسته چشم این جهانه پیامبر دینش به واسطه امیرالمومنین و همین امیر معصومین به جایی میرسه لذا اونها نباشند این امامت هستش که استمرار اینه نظام میگه علی امسانه یعنی مردمکه عین این جهان است چشم این جهان چشم این جهان که بود پیغمبر علی مردمک اوست یعنی اگر علی رو هم نداشته باشی این چشم جهان که پیامبره او هم بگید کار به جایی نمیرسه یعنی امامت استمرار بقول خودمون نبوت نبیه گرامی اسلامی حالا یه با قول خودمون چی میگن؟ یک دقیقه چیزی دیگه بگیم که یه تمرینی خستگی از تن شما به در بده ولی در این حال هم گاهی اوقات من این کارو میکنم واسه خاطی اینکه یه مثال خستگی اون چند ایت اگر چی بود بیارو بیرون در این حال هم سکوت نباشه یه مقداری یه چیزی هم گفته باشیم که این برای این به یادمون خب اگر شعر رو معنا نمی کردیم بعید بود بشه شعر رو فهمید ولی دیگه فهمیدید که انسان نفس مشترکه آه الان تو همین تو این جایی که گفتیم که جهان انسان این انسان یعنی بشر جهان انسان پیغمبر عین انسان یعنی چشم انسان. این انسان هم انسان یعنی اما علی انسان عین این جهان است یعنی مردومکه چشمین ما انسان بعدی به این چی میگن که انسان دوباره تکرار شده یه جا به اسم انسان بشر و یک جا به اسم مردمک ها یک لفظ تکرار شده یک بار به یک معنا یک بار به یک معنا دیگه چی بهش میگن؟ آه؟ بشت میگن ظاهرن جناس نه؟ بلدید مثل یوم و ساعت روزی که قیامت بشه اینجا ساعت یعنی قیامت یومتقوم و ساعت یومتقوم و قسم یقسم المجرمونم ماله به غیر ساعت میگه قسم میخورن مجرمین؟ که ما تو دنیا یه لحظه بیشتر نبود او ساعت دوم به معنای لحظه و یه وقت کرد این انسان این این انسانی که الان تو این بیت هست درست شد. این انسانی که تیم فجاعت به ها بنا انسان عین زمانهی روز این انسان العین باید ببینی که آیا منظور مردمکه یا انسان خب حالا شما کدومش رو میگه جاعت یعنی و ازقا جاعت به یعنی آورد ما رو پس آورد ما رو ما رو آورد پیش کی؟ انسان عین زمانی پیش مردمک چشم روزگار یعنی همین چیزی که من خوندم مشابهی یعنی این آقای کافور اخشیدی رو گفته مردمه که چشم روزگار چطور امیر المومنی بکیم بهت کن برد شب و خلت خلت یعنی پشت سر گذاشت کی این از پا بیازن سفیدی رو خلفها، پشت سر خودش و معاقی این معاقی رو آورده عطف کردی به چایی تیاز آه چشم سفیدی داره و بگید کناره دیگه کنار چشم میگه ما رو آورد رسون به مردمک چشم مردمک چشم زمان و پشت سرش گذاشت کسانی رو که مثل سفیدی چشم هستند و مثل گوشه چشم حالا مردمه که چشم اهمیت داره یا اون سفیدی و گوشهش مردمه که چشم شما خیلی از این افراد رو میبینید که نابینا هستند اما شما میبینید که سفیدی چشمگوشی چشمیناش مشکلی نداره اون مردمک و اون قرنیه و شبکی و اینها که اونجا هست خراب شده درست این عبارت خیلی زیباست و جاعت بنا جاعت یعنی چی آورد انسانه یعنی الی انسان مثل انگار گفته جاعت یعنی او اصفا فجاعت یعنی پس آورد سرنا به تو تایی قبل میگه فجاعت پس اون اصفا بنا بابای تعدیه است آورد ما رو انسانه یعنی ال انسان مثل جاعلی که میگه این مفغوله دیگه مفغوله جاست پس اصطلاح هم بشنه منصوب به نصر خواهد آورد ما رو درست شد؟ پیش انسان چشم زمانش مردمک چشم زمان خودش یعنی کسی که مردمک چشم زمان خودش بود یعنی زمان خودش با او دنیا رو میدیدن یعنی اینقدر زشتش آورد پیش مردمک چشم روزگار و خلد و پشت سر گذاشت همون بیت قبل داره میگه به یه زبان و پشت سر گذاشت بیازن سفیدی چشم رو خلفه ها خلفه ها به بیازن توی اون خلد و پشت سر گذاشت این اسب ها بیازن و مواقی ها مواقی ها جمع مواقی یعنی اون گوش چشم گوش چشم ها و سفیدی ها رو پشت سر گذاشت آه. این گوش چشم ها و سفیدی ها استعاره از کیه؟ اون سواقی اون کوچولو شروعه تو راه ممکنه یه کسی بود اما این مردمک چشم که ما رو به سرعت آورد بهش رسوند که کافور اقشقی بود این همون قبل قبله تکرار کرد یعنی اینها به سرعت ما رو رسوندن به کسی که مردمک چشم زمان خودشه یعنی اون نباشه زمان مردمش اون روزه بار کوره آبود رسون به اون و پشت سر گذاشت خلت خلای و خلی یعنی ترک کرد ترک کرد پشت سرش نهاد پشت سر بیازن و مواقع مآقع. و پشت سر گذاشت سفیدی و گوشه رو، اونها ها هیچ حساب نکن اونها همه گذاشت پشت سر. شد یعنی استعاره است انسان مردمک چشم اینجا منظور یعنی کافور اخشیدی استعاره از اوست. بیازن و معاقی استعاره از کیه؟ اون افرادی که تو راه سیف و دوله و دیگرانی که اونها رو ترک کرد و آدم حساب نکرد و به سرعت کوید و آمد رسید به آقای کافوره اومد رسید به کافوره این زمیر جاعت میخوره به خیول و نه. یعنی عصف ما انسانه عین زمانهی و خلت باز زمیرش میخوره به همون خیول خلفها باز میخوره به خیول درست شد؟ این زماهیر مهنس بکره به خب تمام شد فجاعه پس ما رو به سرعت رسون به عبیات زیبا و بشنگی بود تا همینجا بماند ان الله که عزت برقرار بشه آرامتون رو به خداوند می‌سپاریم از اضطراب و استرس بدور باشید موفق و مؤید باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برم.